قصل یازده بخش بزرگی از دوره نوجوانی کازیما به شکار گذشت ماهیگیری نیز می کرد ساعت بر کناره آبگیرهایی هایی که رودخانه اینجا و آنجا پدید آورده بود می نشست و با قلاب مارماهی و قزه لالا می گرفت چون این می نمود که رفته رفته دارای احساس و قریزه متفاوت با ما شده و همان گونه که هموار پوستین به تن دارد. طبیعت نیز یک پارچه دگرگون گشته است. روشن است که تماس همیشگی با تنه زبر درختان، سر و کار همیشگی با پر و پوست و فلس جانوران، تماشای پیاپی جنبش ها و رنگ های گوناگون جنگل، گشت و گذار میان برک هایی که جنس دیگری داشتند و خون سبز و سیال دیگری، و بازی با پیکرهای زندهی چون تنه درخت و نوک بلدرچین و سر و گوش ماهی که آن همه با شکل‌هایی که ما می‌دیدیم تفاوت داشت و گوشگیریش در دل دنیایی هنوز وحشی که او تا جرفهای آن پیش رفته بود همه و همه می روح و جان او را به شکلی تازه درآورد و کاری کند که او حتی ظاهر انسانی خود را نیز از دست بدهد اما جنین نبود. با همه مهارتهایی که برادرم از نزدیکی با درختان یا از نبرد با جانوران به دست آورده بود، برای من همواره روشن بود که جای او همچنان در میان ماست. در این سوی مرز جهان انسانی است. البته شاید حتی بی آنکه خودش بخواهد، برخی عادتها را رفته رفته از دست میداد بدین گونه، در ماهای نوخاستین کوشید هر یک همراه ما به کلیسایی هنگامی که با جامعهای های پاکیز از خانه بیرون میآدیم تا راهی کلیسا شویم او را نیز میدیدیم که بالای شاخه ها منتظر ماست. حتی میکوشید به سر و وضع خود سامانی بدهد بالا پوش سابقش را به تن می کرد و کلاه سگووشش را به جای پوستین به سر میگذاشت. به راه میافتادیم و او هم از بالای درختان دنبالمان میآمد و گونه در برابر چشمان همه مردمان امبروزا به جلوی کلیسا می رسیدیم. ما با لباس های مرتب و برازنده و او که از این شاخ به آن شاخ می به راستی که این منظره دیدن داشت. به ویژه در زمستان که شاخه لخت بود. البته مردم رفته رفته به آن عادت کردند و خیال پدرم راحت شد. ما وارد کلیسا میشدیم و روی نیمکت خانوادگی امان می نشستیم. روی از بلوط کنار کلیسا جای می گرفت که به پنجره بزرگی چسبیده بود. از جایی که نشسته بودیم، سایه کوزیمو را در آن سوی شیشه‌های رنگارنگ پنجره می‌دیدیم که کلاه خود را برداشته و سر را به نشانه نیایش پایین انداخته بود. پدرم از یکی از خادمان کلیسا خواست تا هر یک شنبه آن پنجره را نیمه باز بگذارد تا به بتواند مراسم را دنبال کند. اما با گذشت زمان دیگر او را نمی‌دیدیم. از پنجره باد می‌آمد و آن را بستند. بسیاری از چیزهایی که تا آن زمان میتوانست برایش مهم باشد اهمیت خود را از دست داد در بهار جشن نامزدی خواهرمان برپا شد یک سال پیشتر چه کسی میتوانست چنین چیزی را پیشبینی کند کنت جوان و خانوادهش به خانه ما آمدند و جشن بزرگی به راه افتاد همهٔ روشن بود همه بزرگان ناحیه را دعوت کرده بودند همه میرخزیدند. چه کسی به فکر كسیمو بود راستش این است که همه به فکر او بودیم. من پیاپی از پنجره بیرون را نگاه می کردم تا شاید او بیاید. پدرمان غمگین بود. در گرم و گرم آن جشن خانوادگی بیشک همه ی فکرش به دنبال کسی بود که در آن شرکت نداشت. ژنرال میهمانی را به گونه‌ای اداره می کرد که انگار مراسم رژه بود و این را برای آن می کرد که قصه پسرش را فراموش کند. حتی باتیستا باتیستای که میچرخید و میرخسید که جامعه را به کناری گذاشته و کلاه به سر گذاشته بود که ظرف باقروا را به یاد آدم میاورد و پیراهنش به مجموعه از چند سبد بزرگ مرجان نشان میمانست که نمیدانم کدام دوسنده ای توانسته بود آن را سرهم سوار کند حتی باتیستا هم به او فکر میکرد کرد بعدها دانستم که او هم به گونه ای در آن جشن شرکت داشت در آن سرما بیان که به چشم ما بیاید سپی سپیداری نشسته بود و تماشا می کرد. پنجره های غرق روشنهای اتاقهای عظیم بسته میهمانان کلاهگیز به سر و رقصان را می دید. با دیدن این همه چه فکری به سرش می زد؟ آیا برای اندکی هم که بود حسرت زندگی ما را می خورد؟ فاصلش با دنیای ما کوتاه بود و بازگشت به آن برایش کاری نداشت. آیا به این نکته فکر می کرد؟ نمی‌دونم. نمیدانم به چه می‌اندیشید و منتظر چه بود. همینقدر میدانم که در همه مدت جشن و حتی پس از آن در همانجا ماند. تا اینکه ها یکی پس از دیگری خاموش شد و دیگر هیچ پنجره‌ای روشن نماند. باری. رابطه کازیمو با خانواده ما چه خوب و چه بد همچنان برقرار بود و حتی با یکی از ما نزدیکتر از پیش شد. زیرا تازه توانسته بود او را بشنازد. منظورم جناب شوالی وکیل اناس سیلویوس کارگاست. کوزیما خورده خورده پیبرد پیبرد که این مرد شگرف و نجوش که هرگز روشن نبود کجا و در چه است خود را با کارهای بیشماری سرگرم می کند و هیچ کارش سرسری و بیهوده نیست. هر روز گاهی حتی در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر در حالی که فینش را نوک سر گذاشته بود و پاهایش در دامن قبایه بلندش گیر می‌کرد از خانه بیرون میرفت و ناپدید می‌شد انگار که شکاف‌های زمین و های پرشاخ و برگ و دیوارهای سنگی او را به کام می‌کشید حتی کازیمون نیز که او را پیاپی زیر نظر داشت سرانجام گمش می‌کرد این کار کازیمون نه برای بازی که از سر غریزه بود رفته رفته چنان شده بود که نگاهش سراسر افق را دربر می و هیچ چیز از چشمش پنهان نمی ماند. گاهی کزیمو می‌کوشید از بالای شاخه ها راه او را دنبال کند اما هرگز نتوانست بفهمد او کجا می رود. با این همه هر بار که او از راهی میگذشت در پیرامون راه زنبورهای های اصل دیده می‌شد و این نکته حالت نشانی اصرارا میز را داشت. به گونه ای که کازیموس هر انجام به این نتیجه رسید که حضور زنبورها با شوالیه در رابطه است و برای پیدا کردن او باید رد زنبورها را دنبال کرد. اما این کار چگونه شدنی بود؟ زنبورها با دیدن هر گلی به سوی آن میرفتند و وزوز وز می کردند. کار درست این بود که زنبورهای تک افتاده یا سرگردان را دنبال نکند و راه هوایی ناپیدایی را در پیش گیرد که زنبورها در طول آن نمی‌آمدند و میرفتند و سرانجام در پس پرچینی از درختان کوتاه به صورت دسته انبوهی در میآمدهند که چون ستونی از دود به هوا میرفت. در آنجا بود که چندین کندو کنار هم قطار شده بود و جناب وکیل در میان انبوه زنبورها به آنها ور میرفت. زنبورداری یکی از چند رشته فعالیت پنهانی اموی ناتنی ما بود. البته نه اینکه کاملا پنهانی باشد، زیرا خود او گهگاه، تخت موم آکنده از اثری را که تازه از کند و بیرون کشیده شده بود بر سر میز میآورد. اما هرچه بود در جاهای زنبورداری می میکرد که بیرون از زمین ما باشد و هیچ کس جای آن را نداند. بیشک دلیل این احتیاطش این بود که در درآمد آن صنعت ویژه خودش نیز به چاه ویل حساب خانوادگی خنوادگی سرازیر شود. یا شاید میخواست دست کم رشته ای را برای خود نگه دارد که برادرش در آن دخالت نکند. آدم خصیصی نبود، وانگهی مگر اندکی و اصل چه درآمدی میتوانست برای او داشته باشد؟ شاید هم دلش نمیخواست تکاتوک چیزهایی چون زن بورداری را که دوست میداشت با آن همه چیزها چون حسابداری و سرپرستی که دوست نمیداشت بیا میزد. هرچه بود، روشن بود که پدر ما هرگز به او اجازه نمیداد کندوهایش را در نزدیکی خانه کار بگذارد. به ای باور نکردنی از نیش جانوران میترسید هر بار که در باغ به زنبوری برمیخورد پا به فرار میگذاشت و کلاهگیسش را با دست چنان روی سرش میگرفت که انگار میخواهد خود را از نوک شاهینی در امان بدارد یک بار چنان دستپاچه شد که کلاهگیس از سرش افتاد و زنبور آنچنان از جست و خیز او ترسید که به سر تاس او یورش برد و آن را با نیش زد پس از آن پدرمان سه روز پیاپی دستمال هایی را به سرک می آقشت و روی سر خود می فشرد. در روی, روی با دشواری‌های بزرگ آدمی نیرومند و سرفراز بود اما از یک جوش یا خراش کوچک دیوانه می‌شد. باری اناس سیلویوس کارگا در گوش و کنار سراسر دره امبروزا کندو داشت. زمینداران در برابر اندکی اصل به او اجازه می دادند که یکی دوتا از کندوهایش را در زمینهای آنان نگه دارند. و او دشت و دمن را زیر پا میگذاشت و به کندوهایش سرکشی میکرد. پیرامون آنها میپلکید و با دستهای کوچک شگرفش که نیم دستکشی آنها را میپوشاند و به پاهای حشره میمانست، با آنها ور میرفت. هنگام کار توری سیاهی را روی فینش میانداخت که همگام با نفس زدنش بلند میشد و به دهانش میچسبید. وسیله نیز همراه داشت که دود می پراکند و هر بار که به کندو نزدیک میشد آن را به کار میگرفت. تا زنبورها را بتاراند این صحنه آکنده از زنبورهای لولنده و دود پراکنده برای کزیم حالت صحنه جادویی را داشت آیا در یک چشم به هم زدن امویش دود می شد و به آسمان میرفت و نابود می شد و سپس در جایی و در زمانی دیگر به شکل انسانی دگرگون زاده می شد نه افسوس جناب وكیل جادوگری ساختگی بود و همواره پس از اندک زمانی به صورت همان آدم همیشگی و در حالی که انگشتش را به خاطر نیش زنبوری میمکید از میان آن ابر شگرف بیرون می بهار بود. یک روز صبح کازیمو حس کرد که نوعی شور و دیوانگی در هوا موج می زند. هم همهی به گوشش می رسید که تا آن زمان نشنیده بود. هم همهی گنگ اما آن ژرف، که گویی قررش تندری بود. ابری از تگرگ از آسمان میگذشت اما به جای آنکه به زمین ببارد افقی میرفت و آهسته آهسته به گرد ستونی از تگرگ انبوهتر میچخید. هزاران زنبور در هوا پر میزد پیرامون آنها سبزه بود و گل بود و آفتاب بود. و کزیمو که نمیفهمید چه خبر است دست خوش شوری تبالود شد. فریاد زد زنبورها دارن فرار می جناب شوالیه فرار می جناب وکیل و از بالای شاخه ها دوان دوان به جستجوی کارگاه رفت شوالیه چون قارچی در همان نزدیکی کزیمو سبز شد و گفت فرار نمی کنند دارن جا به جا با اشاره به کزیمو گفت که سر و صدا نکند و پس از یک لحظه دوباره ناپدید شد کجا رفته بود؟ دور جابجایی زنبورها بود. ملکه از کندویی به کندوی تازه میرفت و انبوهی از زنبور به دنبالش میرفتند. کزیمو نگاهی به دور دورو برانداخت. جناب وکیل در آستانوی در آشپزخانه پدیدار شد. چی در دستی و تابعی در دست دیگر داشت. آنها را به هم میکوبید و دنگ دنگ صدا میکرد. صدایی چنان گوش خراش و پرتنین که آدمی را وامی داشت گوشهایش را با دست بگیرد. جناب وکیل به دنبال دسته زنبورها به راه افتاد و در هر سگام ظرف های مسی را به هم میکوبید. با هر صدای آنها گویی دسته زنبورها دچار لرزه می شد. پایین می آمد و بالا میرفت وزوزها فروکش میکرد و پرواز زنبورها آشفته می شدد. کزیمو درست نمیفهمید چه خبر است؟ اما چونین به نظرش می رسید که دسته زنبورها به سوی نقطهای در میانه درختان می رود و می استد. در این حال، کارگاه؟ همچنان ظرف مسی را به هم میکوفت چه شده جناب شوالیه؟ دارید چه کار میکنید؟ جناب وکیل من و من کنان گفت. زود باش! زنبورها ها روی یک درخت نشستند. برو! اما مواظب باش. کاری به کارشان نداشته باش تا من برسم. زنبورها ها روی درخت اناری نشسته بودند. کزیمو خود را به آنجا رساند اما چیزی ندید. سپس ناگهان چشمش به میوه درشتی چون سیبکه کاج افتاد که از شاخه ای آویزان بود. انبوهی از زنبور بود که به هم چسبیده بودند و زنبورهای تازهی می و به آنها میپیوستند. پیوستند. کزیمون نکه درخت ایستاده بود و دم نمیزد. خوشی زنبورها زیر پایش آویزان بود. هرچه بزرگتر میشد شد به نظر سبکتر می رسید. گویی تنها به نخی آویزان بود. به رشتهی حتی نازکتر از نخ پاهای بسیار نازک ملکه پیر و بالهایشان نیز چه نازک و سبک بود بالهای شفاف خاکستری که تن زرد و سیاهشان از پس آن دیده میشد. شوالیه با کندوی از راه رسید کندو را برگرداند و زیر خوشه گرفت داد زد درخت را تکان بده کزیما درخت انار را تکانی داد خوشه ی زنبور چون برگی از شاخه جدا شد و به کندو افتاد. شوالیه با تختی کندو را بست و گفت این هم از این به گونه میان کزیما و شوالیه وکیل تفاهم و همکاری و شاید حتی دوستی برقرار شد. البته اگر بتوان درباره این دو شخصیت آدم گریز واجه دوستی را به کار برد. اینا سیلویوس و برادرم حتی در زمینه آبیاری با هم سر و کار پیدا کردند. این شاید عجیب باشد. کسی که بالای درخت زندگی می‌کند، ظاهر کاری به کار چاه و آبراه ندارد. اما اگر به یاد داشته باشید، برایتان گفتم که کوزیمو برای خودش چشمه ای ساخته بود. جناب شوالیه که آن همه سر به هوا جلوه می‌کرد، کوچک‌ترین دگرگونی در چگونگی جریان آب سراسر ناحیه را زیر نظر داشت. به دینگونه روزی از پس بوته های بالای آبشار، چشمش به کزیمو افتاد که ناودانش را از لای شاخه های گذراند و به سنگ نوک آبشار رساند و با این وسیله آب نوشید. کزیمو که مانند آدم های وحشی عادت داشت هر چیز خود را پنهان کند، هنگامی که به آب نیاز نداشت، ناودان را در گوشه ی لا شاخه ها می گذاشت. خدا میداند جناب شوالیه با دیدن این به چه به افتاد؟ هرچه بود برخلاف همیشه ناگهان دست خوش شور و شادی شد. از پس بوته ها بیرون پرید. دستهایش را به هم کوبید دو سوار چونان بر جا جهید که گویی تناب بازی می کرد. مشتی آب به هوا پاشید و چیزی نمانده بود که از آبشار پایین بیفتد. سپس رو به کزی کرد و به شرح نظریهی پرداخت که ناگهان به فکرش رسیده بود. نظریه گنگی بود و شرحش از آن آشفته تر. جناب شاوالی عادت داشت بگویش محلی سخن بگوید و این را از سر فروتنی می کرد نه به این خاطر که ایتالیایی نمیدانست. اما هر بار که ناگهان به هیجان میآمد بی اختیار به ترکی سخن می گفت و دیگر هیچ چیز از گفته گفته‌هایش فهمیده نمیشد. فکری که به سرش زده بود این بود که آبراهی هوایی بسازد که از بالای شاخه ها بگذرد و به آن سوی دره برسد و آن بخش بسیار خشک و کم را سیراب کند کوزیمو در دنبالی طرح او پیشنهاد کرد که در برخی جاها لوله های سوراخ سوراخ به کار ببرند و با این شیوه که را با باران ساختگی آبیاری کنند این پیشنهاد اصلاحی جناب شوالیه را سرمست از شور و شادی کرد دوان دوان به اتاق کارش رفت و در را به روی خود بست و بیتابانه به نقشه کشی پرداخت کوزیمو نیز دست به شد از هر کاری که با درختان رابطه پیدا میکرد خوشش میآمد. به نظرش می رسید که چون این کاری به او اهمیت و قدرت تازهی می دهد. خود را با این آس سیلویوس کارگاه هم بسته حس می کرد. روی درختی قرار می گذاشتند. جناب وکیل با یک بغر کاغذ و نقشه لوله شده می آمد و به کمک نردبانکی خود را به بالای درخت می رسند. می نشستند و ساعتها گفتگو می کردند و طرح آبراه هوایی را می پرورندند. اما هرگز به مرحله عمل نرسیدند انا سیلویوس خسته شد هرچه کمتر به دیدن کزیمو رفت و نقشه هایش را به پایان نرساند پس از یک هفته مسئله را فراموش کرد کوزیمو از او دلگیر نشد خیلی زود دریافت که تنها بهری آنتر این است که زندگیاش را بسیار دشوار و پر دردسر کند. روشن بود که اموی ناتنی ما در زمینه آبیاری بسیار کارها می تواند بکند شور این کار را داشت و از هوش لازم برای آن برخوردار بود اما توانایی انجام هیچ کاری را نداشت. نیرویش به جویباری میمانه است که هرز برود و پس از راهی در دل خاک ناپدید شود. دلیل این ناتوانیش روشن بود. زنبورداری کاری بود که میتوانست به تنهایی و آزادانه و تقریبا پنهانی بکند و هرگاه که دلش بخواهد مقداری اصل به خانه بیاورد بیان که هیچ کس این را از او خواسته باشد. اما برعکس، آبیاری کاری نبود که بتواند بدون در نظر گرفتن خاسته های این و آن و بدون سفارش ها و دستورهای های باران یا کسان دیگری که به کمکشان نیاز داشت به انجام برساند. و از آنجا که بسیار کمرو و بی اراده بود، هرگز با خواست دیگران مخالفت نمی کرد. اما به زودی از کاری که در پیش گرفته بود، به ستوح می آمد و آن را رها می کرد. بسیار دیده می شد که با گروهی از کارگران بدهست. به میان که میرفت می رفت نقشه و چوب اندازی به دست داشت پاهای بسیار کوتاه را به این سو و انسو می کشید و به کارگران دستور می داد که آبراه بکنند در جاهای گوناگون زمین را میکند و نیم کار رها می کرد شب که میشد دست از کار میکشید و به ندرت دیده میشد شد که فردا کار را از همان جا دنبال کند می رفت و بیش از یک هفته از او خبری نمیشد. دلبستگیش به آبیاری از شور و کششی ژرف و آرزوی نهانی مایه میگرفت. یادی همواره در دلش زنده بود. یاد زمین های زرخیز و سیرا به سلطان عثمانی. تنها در آن ها و های رؤیایی خود را خوشبخت حس کرده بود. همواره زمینهای امپراتور را با قیصرهای بربرستان و ترکیه مقایسه میکرد. و آرزو داشت آنها را به گونه‌ای بارآور کند. که خاطره هایش را دوباره زنده کند آبیاری برایش هنری بود و آرزویش برای دگرگون کردن چیزها همه در آن خلاصه میشد. اما این آرزوی نشدنی بود پی در پی با واقعیت هایی ناگوار برخورد می کرد و ناکام و سر خورده به جا می ماند از کارهای دیگری که می کرد آبیابی بود که آن را نیز پنهانی می کرد در آن زمان این گونه کارهای عجیب و غریب هنوز نوعی جادوگری به شمار می آمد. روزی چشم کزیمو به او افتاد که چوب دو شاخه ای را در دست گرفته بود و در کشداری به دور خود میچرخید گوی آن کارش نیز هوسانه بود زیرا به هیچ نتیجه ای نرسید شناخت خوی اناسیل اناسسییلویوس کارگا این سود را برای کزیمو در برداشت که او را با جنبه های زندگی آدم های نجوش و مردم گریز آشنا می کرد. این شناخت بعدها به کار او آمد حتی می توانم بگویم که شوالی وکیل گوشهگیر همواره چون الگویی منفی در برابر چشمانش بود و به او نشان میداد آدمی که بخواهد جدا از دیگران و تنها به حساب خودش زندگی کند سرانجام به چه روزی می افتند. بدین گونه با در نظر داشتن این الگو توانست کاری کند که هرگز شبیه او نشود